من الرحيم. بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله رب دلالامین و الله و آلت الطیرین و طافرین المعصومین و اللهم جميع المشتفلین و رحمتک یا بحث این نجوم و وجوب خارجی هست این بحث رجالی راجبه محمد بن عمران البته من اون شب اون کردم که سند درست به این روایت همونی که صدوق روایت محمد بن عمران این به اصطلاح سند صدوق میتون صحیح به بحث نیست انما کلام این است که همینطور که حضرت استاد اظهار فرموندن حالا اگر قبول کنیم استاد ها این شما ایشون که محمد نهمران در یک جای از صغید با سید نحوی آمده و اونیم که در شیخ هست همون نحویه مثلا عندنا خود صدوق هم نحوی اگر ما این مطلب ایشان قبول بکنیم حالا بعد از و واقعاً ما اگر مراد از محمد بن عمر النحلی باشه سند به محمد بن عمران صیغه خود محمد بن عمر النحلی هم طبق عبارت نجاشی سررس مشکل نداره او پدرش انعبیه در کتاب صدوق آمده انعبی پدر ایشان نمی‌شناسیم یعنی این محمد بن عمر النحلی خود حمران کیه آشنایی با ایشان نداره از ما یک حمران مشهور داریم که برادر زوران هست خوب ایشون معمولاً اون نیست. اگر اون نباشه، خود محمد بن احمد را نه دیز سری، اتیم پلارش ماجوره حالا. استدراك مخالف هست. شما هنوز از که که اگر ما باشیم و به هر توضیح، تاریخ معلومه صدوب به محمد بن احمد را و راه صدیقیم واقع همینه. اتیم به لحاظ طریق تا محمد بن احمد بعدش خرابی داره خرابی داره. اگر واقعا این نهلی باشه خب من دیروز متعرض عبارات شدیم توضیح که داده شد اگراته یک مقداری مرمو شد که در این کتاب مرمو استاد چیز نشده یعنی با دقیقا یک مقداری عنوانها خیلی دقیق نیست و یک عنوانها هست و شد یک جا جایی شده که الانشون حالا به کتاب خیلی روش بحث نکن میمونه در تحریلی که ما در اینجا باد اراده بدیم و ببینیم واقعا دو نفر یا یک نفر و اون یک نفر چیه یا موارد شرق میکنه یا بالاخره مشترکه؟ اگر بگیم مشترکه مثلا اگه بگیم این هم توصیق نداره در رام هم به دو نفری میشه که یکیش توصیق نداره این راجب اجمال بحث که یعنی که از عباراتشون کندیم و توضیح ارز کردیم که اینی که آین مظامه رو سری آقای, آقای کویی که عقیده نجاشی این بوده عقیده شیخ بوده ظاهرن مجرد عقیده نبوده یعنی حالا عقیده به یک معنا اختیار هم بوده تو کار یعنی راسته یک عمل واقعی بوده از واسیشون اختیار کرده اما فرقوم شیخ اعتمادشون بر کتاب فهرست ابن بوته که دیروز عرض کردید نجاشی این فهرست در اشتیارش بوده لکن بشه اعتماد نکن چون میگفتد فهرستیشون غلط داره غلط های زیادی داره و شاید به نظر ورکشون بوده که اینجا فهرست اشتباه کرده در ذهن ایشان نفی فهرست ابن بوته به ذهنیت نجاشی حسب قاعده ازم میکنیشون نفی نکرده و من کراراً عرض کردم مرحوم نیاشی رجال ننویشتن اگر رجال نمی‌نوشتن خیلی از این کتاب بزرگتر بود چون روات رواش می‌شدن کتابیشان رجال نیست کتابشان فهرسته چون کتابی نوشتن در فهرسته مؤلفات و مصنفات و اصول ما لذا کتابیشان نقص زیاد داره نمی‌شه افراد درم که اینا جزء رواث هستن ولی در کتابیشان نیامدن و افرادی هم که جزء نیستن و در کتاب ایشان آمدن چون تاریخ داشتن خب از, از متکلمین رو ایشون اسم داره مثلا کتاب در اساس توحید و تدوین حرفا نوشته راوی نیستن اما متکلمن فلسفه متکلمن اما راوی نیستن هم اما راوی نیستن اما چون کتاب دارن نمیشی اسم اونها رو برده یا تاریخ کتاب در تاریخ داره اسم اونها رو برده ولی اینکه که ما از اونها روایتی نگرفتیم مثلا خود خبر بفرمایی کتاب نجاشی با رجال قاسره در اینجا داشته به این که ابن ایم داریم یا نداریم نجاشی ساکت شده نجاشی رد نکرده فقط همین مقدار محمد ابن حمران نحنی رو برده یه اونیشی رد نکرد اما شیخ به احتمال بسیار بسیار قدید به شوالدی که ما داریم این نسخه ای اجازه ابن اخده فقطاً یعنی این استاد که درست نکرده یعنی احمد بن جنگی این چه مسلمه اما آیا اجازاتی که ابن عوده به افراد داده یکی بوده یا مختلف ما اون رو الان نمیدونیم اون مشکلات کار ما را اون رو از اول ما الان دقیقا نمیدونیم شیخ ابن جنگی رو درست نکرده از استاد است. اون برمو هایت الله قبضا این مفسده از اون تحضیب مقاط اول ابن جنبی رو نشیخ از حال شیخ ها انها کسی رن ظاهرن اشتباه حالا چاکنه واده شده شده شنیشان عجل هست ابن جنبی سال 396 خوب کردن بخدار و شیخ 48 بخدار آمنه یعنی شیخ توصی 12 سال بعد از ابن جنبی بخدار آمنه دیگه قطعا آثار ابن جنبی رو نحو نکرده این واضح کاملا خودش هم که اسمیشان رو برده رو غیر از این که اسمیش رو پر از خلوط برده شده کتاب رجی فرس شیخ نشته اخوان ما به کتب بیبروازی ابو طالب ابن عزور یا عزور بنامیشونی بخونیم سن. این آقارم کلن نمیشناسیم احتمال احتمالاً از مشارق در از بغداد بوده چون شیخ رو درد نکرده جای دیگر مثل ایشون برده نکرده این ابو طالب چیه نمیفرمیشتار هست پس اینی که برمون استادمون آی نجای آی افتهی فهمدن رواعن ها شیخ کثیرن اشتباه رواعن ها نجاشی کثیرن این راجعه بگیم شیخ آثار ابن عقود را اساساً از مرهوم استادشون ابن سلف احوازی نهر کردن این هم اشتاگیده ابن عقود است و اساساً و من درست کردن این قاعده از ذهن باشه در مسائل کتاب شناسی نجاشی به مراتب و شیخ مقدمه دقیق تر و ضریب تر اما بعدی جه شیخ بهتر از نجاشی اینا هست این هم هست لطره همیشه اینطور نیست که تد درست هست چند مورد که هم نیم خواهد متعرضش بشن. شیخ مسائل نسخ شناسی به کتاب شناسی زد. از جل... نجاشی بهتر یکیش در همه آثار ازماغذه مثلا نجاشی همی که اطور مجموعه ازماغذه مشاهد انا انهاراسته چون در بغداد زیاد دن شاید میگه. هم زیدی ها در بغداد بودند از شیاخت ابن اوه در فرند هم سنیه ها بودن از ابن اوه در فرند نجاشی از زیادی هست مشایف دیگه از ابن اوه در راستان میبین اما شیخ در ابن اوه دیگه من اجازه ابن اوه رو به حط خودش که به ابن سلط داده دیدم این توصیب شیخ در لیتر از نجاشی و من دیرود ارس کردم که ابن اوه در فهرست ن بنين اباضی که ناهر یک بدنه کاورر شما واضح شد که اعتماد شیخ بر اجازه ای این اوده است نه بر شهرت دیروزا بدهش عرض کردم اگر کسی کتاب نوشته باشه مثل نجاشی بهش میگن فقیه چه همون کتاب ها رو به شخص معینی اجازه بدهش میگن اجازه خلاص این تفسیری است که بنده الان عرض می کنم ظاهرا این اجازه با فریضه فرگشه لکن معذالک با این, این تفسیر خیلی واضحه باز هم برای ما یک مشکلی داره اون مشکلش اینه که مرقوم نجاشی اجازه ابن ولید به ابن ابی رو داشته که نجاشی هم داشته نجاشی در یک جا گفته فهرست ابن ولید در یک جا گفته اجازه ابن ولید از یک کتاب واحد برای تعبیر به فهرست کرده در کل در رجال نجاشی یا فهرست نجاشی دو بار اسم این کتاب آمده فقط دو بار در یک جا گفته فی فهرست ذکر ابن ولید فی فهرست فهرستو که فهرست یک‌جا گفته اجازه اجازه رو من دیدم نه اینکه ما این اجازه است یا فهرست مال ابن و هنوز نفهمیدید دقیقاً عبارت نجاشی خالی از صحابت نیست یعنی خالی از ما نمی‌فهمینه که اشراق شده اون زانه اصطلاح دیگه بود بوده به هر حال کاملاً واضحه که مرحوم شیخ اجازه ابن اوقدر رو دیده که به شاگردش ابن صرغ داره بکنی؟ و به حق خود ابن عقده بوده این هم واضحه زیاد هم واضحه. ازش نه میکنه واضحه هم زیاد میکنه واضحه او شیخ چارتاد و نه به بردار آمده ابن سل چارتال، چارتال هش شیخ ابن و نه فوت کرده من هم همه اوال بوده یک اجازه عام به کتوب ابن عقده ایشون گرفته چرا اینجا اعتماد پیاده که که نداشته توضیح نه درست خجا گرفت دیگه نجایچی باید گفتی اجمال قرده شیخ توضیح داده. میگه ارتباط من با ابن اوغده توسط ابن سرکه و ابن اوغده به حق خودش به ابن سرک اجازه داده یه خیلی واضح. این کار رو نجاشی نکرده اگر مثلا من روشن هست روشن هست شیخ مبدع اقتصادش رو به ابن اوغده واضح واضح اجازه ایست که ابن اوغده به حد خودش دقت بکنید به ابن سلط احواضی داده البته این کلی واضح اینجا شیخ خیلی واضح ایچه ابحام بده اونه که ابحام داره ابن سلط احواضی در وقت وفات ابن اوغده نه سال داشته خیلی مبهنه ما ابن سلطه متولد سی و بیست و چار ابن اوهده متوفای سی در وقت وفات ابن اوهده نه سال داشته یا حالا یک شخصیتی چون از که در سابر گره هستم شد وقتی یکی فیلمتا مردی ایو شخصیتی بود یه بچه ای اجماعش هم که به دنیا می آمد سال پیش یک اصلا دستاد حدیثی ک یه اجازه دی این بچه یک ماهه می داشته که بعد که مثلا ان بشه 80 ساله یه علم به احسان این بوده متوارح اما واقعا خیلی گرجی یه چیزی به نظر ابهام داره اینجا که ابن عبده به خط خودش کتب و روایات خودش رو به یک بچه 9 ساله اجازه داده اگر واقعا بگیم چه حرف شدیدی برای حفظ حدیث باشه اجازه داشته واقعا تعجب آوره من هنوز نمیفهمم این مطلب جوریه ابن عوضه که واقعا باید ایشان به جز اعمه اینشه انتصاب کرد جز اجایب دهره نه اینکه باید اجایب دمان خودش در حفظ حدیث یعنی به این مزیر چیگن محسوره نیگن دارت مارد نیگن به حالات محسوری و دارت ای. مثلا یک کتابی افراد در قضایه حولی نماشه یکی من تونسیه جزایبی دی بیست و دیست جلده این توی این کتاب گیتس چیه اسمش اگه بنازی کساد موند زنیم سوای از نقد، مثلا یه دوره فرمانیشتن، یه بار چندش شطور بود، دو تا سه تا شطور بود، که هیچ در نیست، دنیاست، انسانها هر دل بیاد بود، تو تمام روندش رو استیاب کرده یه دوره ی شش هزار فولادی، هزار حدیس رو میتونستی بحث بکنه نظر دادی، شیسده هزار حدیس از گرنه این بسواری ما با مکررات استیوفانی داره دیسی، چون داره تحت اداره با کامو این داره حالا شیفت در هزار حدیث در نظر بگیری این بیاد یک بچه نوح ساله به خودش تمام کتب و نوحیات خودش این شیفت اشتباه نمی کنه بعید چند شیفت خوبه بعیدی کمچه اشتباهی و مرتقب بشه میگه من دیدم اجازه ابن عقوده به خط خودش به ابن سلط احوازی به کتبیهی برای وایاته این احتمال یک چیزی و لخری به ذهن که شاید مثلا حالا ابن عقده همه کتب نمی‌خونم من واقعا نمی‌خونم همه چون ابن جندی عمرش بیشتر بودهمون ابن جندی در وقت وفات ابن عقده نزدیک به 60 ساله شده و بزرگا بوده الله اشهد الله قياس صد کلمه اما ابن سعد 9 ساله واقعا یا باید بگیم خیلی اینها غیور بودن بر حفظ حدیث که بیاد یه پیرمندی که امام امام فشان در حدیث یک بچه نه ساله اجازه همه کتاب بر که بده چون داره به جمعی کتبی بر روایاته بعد میگه دیلم به خیلی چون قدر به اجازه یا این حالا به کتبی بر روایاته همش نباشه احتمال اینو رو میدم که شاید همه کتاب بر روایاتیشان نبوده همچین این مقداری به نظر من خالی از امه نیست و شاید صبر این که در بعضی از جاها مرهوم نجاشی از ابن عوضل میاره و شیخ میمیاره شاید اینادارش این باشه بلعه الله یعنی شاید نکتهش این باشه اون استاد واسطه خیلی مهمه واسطه مرهوم نجاشی ابن جندی که خودش از بزرگاه یه عباره داره مرهوم نجاشی در ابن جندی میگه الحقنا به شیوختی ایامه اگر الحقنا بکنم بوله که اینا نکنم چون من من زیدن شیوی بکنم عباره. این معنی میشه ابن جندی که از بزرگان بغداد هم بوده میخواد بگه ابن جندی به ما اسم مرد مکر شیخو خطرشون الحقنابر زنه به ابن جندی برگرده ابن جندی بهن اجازه داد که تضبیق پیدا کنن برای تهذیب و اثرات بیان مراجعه بکنن شبیه اجازه اشادت الحقنا به شیوخ پی ایامه که معلوم میشه معلوم نجاشی قبل از آمدن شیخ به بغداد به 12 سال از سال فوز قبل از آمدن شیخ برداز حد اjackا دول دوازده سال جBravoششیخوخ از آمدن شیخ برداز خود نجاشی خود نجاشی جزر شروخ و مشاعق از آمدن شیخ برداز قبل از آمدن شیخ برداز دوازده سال لاغم مجز آمدن شیخ برداز مرغوم نجاشی ترسط ابن الجندی به ربستوی شیخ حروخت حدیث و مشاعق حدیث شناخته شده ظاهر عبادت نجاشی اینه. اونی که ما الان از این تحلیل میفهمیم اینه که مرحوم شیخ سوسی اعتمال کرده به نصفی ابن بوته و به احتمال بسیار بسیار قوی این اجازه ابن عوضه پیشش نروبه چون شیخ سوسی حالت مقام جمع جمعی داره خب اونجا بوده ابن عید هر می میابده من احتمال بسیار بسیار قدی میدم که این کتاب محمد ابن عمران نهدی در اجازه شیخ توصی که داشته از ابن عقده توسط ابن سرس نیامده این یک مطلب یکی مطلب یکی طور کلی ارتره. اینو در نظر مبارکه مون باشه چون نجاشی و شیخ هردو دو بودن طرقی برای وسیدن بیمیرسه های کوفه از را کوفه دارن طرقی هم از را بوم دارن اینجا یک تریلی که هر دو دارن این به کوفه طرق متعدد دارن دو طریقه اینها به طرف کوفه که باز بعداً به کوفه مستقیم میره از همه مشهورتر یکی ابن وقده و حمید بن زیاد این به طور کلی در ذهن خوب بود پس معلوم شد که مرحوم نجاشی به طریقی که خودش مستقیم به کوفه داشته و اون اجازه ابن وقده اسم کتاب و اسم شخص و محمد بن عمران نحوی گرفته البته احتمال هست که نهدی و نجاشی اضافه کرده داشت اما خیلی بعیده از کردم آزتاً معناش اینه طب تصور افضای اصل اولی که در خود اجازه ابن اقدمی تو بوده کتاب و محمد ابن همران نهدی اخبر آبی کنان این طوری بوده زادنه بعدم نجاشی یک معلوماتی داره که کوفی یا از سکن جرجریا سکن جرجریا جرجرایا داری احتمالا این مطلب تو خود همین اجازه هم بوده چون اگه دقیق بکنید مرحوم نجاشی که سرد نرگوزین تو میگه میگه ابن حضال گفته حدسانا علی یوم از فی دهمیزی یومل اربعا این دهمیزم قاسم در کوفه از دیگه اشییتن یا اشاهم لعربعلایالن خلون من شعبان سرد سلاسین و بعتین احتمال داره که مثلا این بوده جناب های علی ابن اسفاط گفته اخبرنی حدثنی محمد ابن عمران نحوی فی جرجرایا و هو من الكوفه احتمالاً این معلومات نجاشی هم از خود اجازه گرفته شده باشه چون جایی ما نداری معلومات رو محمد ابن عمران اگر اینا بودش که اون یکی از ظاهران کوفی سراغ دوست باشن پس بنابراین احتمالا این معلومات رو هم مرحوم نجاشی از همون اجازه گرفته. این تحلیل عبارت نجاشی البته مرحوم نجاشی نفی یا متعرض ابن نشده اصلا اصلا نشده اما شیخ هم در فهرس با متعرض اینی نشده اون که ما الان به ذهن میرسه مصدر این دو بزرگوار با هم فرد میکن حالا این رازی به شرح ابارة پیشی خو نجاشی و مگر دمادی کی حالا، پیش، مثلاً ابن از ابن عادل آقاین، ایش به امّان. اصلاً ابن بودا در کوه ایشون در کوفه است ربطی به امّان. مثلاً ابن بودا از تفرّختن حتّی به لحاظ تفرّخت نیکود که مثلا بعد از ابن عادل باشه فاصله بود بوداشته. از کلیم شیوا. زیاد, زیاد. نگاشی هم بعض جا نعم اونجا که اعتماد داره نعم این جایی که نعم میکنه که اعتماد نکرده این یه خوزیه درست ما هم واسه اون بحث بشین که خیلی طولانی میشه از بحث ما خالجه. خب برگردیم معلومات خودمون یک سیر و سیاهر در مقدار معلومات خودمون بکنید تا برگردیم به نتیجه گیری یک محور روایات در خصوص اربعه تماما محمدی و و در بین کتب نگاهی که به شد همشون محمران یه مورد من فلانه من فلان همرانی نعید الا همش محمد ابن همران نهدی توشید اگر از هست نهدی در محبر روایات نیست الا یک روایت واحده اونم در فقیه تا ایخوی روش اعتماد کردم من تشگیری کردم روا محمد بن همران نهدی و جمیل ابن در راج. این هست در کتاب فقیه و که انصافاً وصولی به صحت این ما الان نداریم همولاً این روایت در کافی آمده این این باید مطمش همین بایده اونجا محمد بن همران داره نهلی توش آره. در تحضیب در دو محصر جزازانه و یکی از حسین تحریق از در دو موردی که در تحضیب و برده این همین باید هیچ فرق نداره اونجا هم محمد ابن همرانه ایکی دوست هم از آقایم نه بکنه دیروز که در این چیه کامپیوتر نور چیه در نفضار نور این شورم نرده در نصح خطی نهدی نداره نصح خطی خود پقید پس معلوم میشه این کلمه محمد نهامران نهدی که در نصح چاپی آمازه خیلی اصل نداره نه در بقیه مسابر ما اسم این آمده مراده از مسدر چون ها کنگی اختلاف کتاب اختلاف نصح در مصدر مرایل اختلاف المصادر یعنی کافی و تحبیل و استفسار اونجا هم کلمه نهدی نیامده در نسخه خود فقیه هم در نسخ مخصوطه قابل اعتمادش نهدی نیامده پس بنابراین در محور روایات به ازن الله تعالی فعلا اون چی که در اختیار ما هست محمد ابن همران نهدی نداری چه در کتب عربعه چه غیر کتب عربعه این که فعلا در اختیار ما هست این مهور روایت یه روایت داریم که نه همه نه همه نهل در غیر کتب عربعه و اما ابنه هم در کتب عربعه نداریم یه مطلبی رو من در اینجا توضیح بدم خدمت رو. یه یه مسائلگاهی در عرف اجتماعی در عرف های جایی میشه که مثلا یا زمان عرض میشه و خودتیات میشه و مثلا توجه نمیشه مثلا ما اعرض کردید اگر شما یک راوی دیدین که اسمش تنها آمده اسم پدر نمیشه غالبا اینه چون در اونجا یک ای بود که عبد رو به نام پدرش نسبت نمیدادن من کنید که بعد خودون عبد مثلا بخشدار دار میشون های او مثلا شما, می... شما میگید مثلا یاسر یاسر رو پدرش نسبت نمیده اما عمار پسرش ایشان نسا. خودش هم عبدزنش هم سمیه عده کنیز. اونم نمیگه سمیه بنت کلا. یه جزء استراحات اون زمان. مثلا بسام سیرتی، وقتی که اسم تنها میاد این عادتاً علاقت این که عده. عادتاً نمیخوام بگم جاهل، لزوم داره شما میگه که عبدان نبود. عادتاً و نوشته نمند در نزد کتب تاریخی تصحیح کردم. این کتب رجال این کتاب تردید و تردید نگاه می کند نوشید که چون ذکر رو با حاضر آمان فاقوه عبدون به الله اسم بزرشی جمع نبوده این مثلا یکی از رموز بود یکی از کار یکی از کارهایی که اگر فرد شهرت پیدا می با اون درجه بالای شهرت دیگه اون تطرمش رو نمی و این شهرت هم مختلف بود گاهی یک فرد در یک فرد کنید مثلا جامعه صنعتی شهرت داشت توی جامعه دینی شهرت نداشت توی جامعه دینی شهرت داشت توی جامعه علمی شهرت نداشت طبق جامعه ها و طبق اون محدوده های خودش این ترد می کرد. مثلا کلینی زیاد داری میگه علی یا عبی هر وقت کلینی گفت علی ولی علی تنها آورده ما دن علی زیاد هم داری علی یا عبی بسیار هر جا علی ننابی وسیر باشه علی ننابی همزه این محدوده. یه مصلح هم داریم. زراره. همه در همه که همین زراره. چون شهر دیگه این میگن مثلا ما چند تا مسما به زراره در اون درام داشتیم. اینا رو دیگه نگاه نمی کنه. این متعارف بیده. یا اگر فرق رو می رسوند. مثلا ایشون نبی داره محمد این عبدالله. مثلا در کتاب ها خیلی کم داریم محمد این عبدالله. وقتی اسم تا می رسوندم به یک شهر مشخص و محروف بیا اختفا می کردم نمی گذن مثلا محمده نه عبدالله نه زرارت نه عینا نه سنسن مثلا تا, تا به زرار می رسید این رسمی بوده متعارف بوده این جوزه متعارفاته اون زمان بوده یعنی و این شهرت از کردن مثلا علمان در کتب فرم گین شیخ مورد شیخ انساگی در کتب فرم گین شیخ مورد شیخ توسی در کتاب فرسر یه شیخ ما این شهرت ها به عرب ها فرق میکنه به راوی فرق بعضش هم مطلبه مثلا اگر ما باشیم این عنوانه قبل از این مخواهیم بارد تحریدش بشیم تا محمد بن همران نه بعد صفتی برش اوورد ان نهدی از نه بعد اسم جدشو آورد. مثلا محمد ابن همرانه نعیم اسم جده این معلوم میشه که به این مقدار شناخته شده بوده این معلوم میشه که مراد از همران عادتاً یک شخصیت معروفی بوده که به مجرد نیگم که سر همران به ذهن میامده خود دفعه بخونیم به مجردی این طور محمد افن همران مثلا الان شما میگید مثلا حضرت آقای بلپایدانه اینجور فهمده این حضرات گروه پایه‌ی معنوی به خاطر یه سؤال که مثلا در گروه چند تا از علما بودن، آیت الله بودن، مثلا آیت الله شیخ، آیت الله سیدنا و این مشترک مشترکه میسان. نه، از اصل شده گروه پایگان رحمت الله علیه شما چند دیگه این که پیدا میکنه این اصطلاح این یک چیزی که زمان ما شده باشه این اون یکی اول در اون زمان گذشت و الان مثلا. اما در اون زمان بود وقتی اسم تنها برده میشد این و مخصوصا که خیلی هم معروف نبود مثل زور آراد قاعدتا اون عفده این معنی که این شخص عفد بوده حالا ممکنه برد خودش اولاد داشته باشه،, باشه به اون نسبت داده باشه اما خودش به پدر نسبت نمی دادن. حالا پس ما چون در روایات کثیره محمد بن همران داریم بعد تکمه نداره خود گفت بکنیم نه داره عشقبانی نه داره انهدی نه داره ابنه این خودش به نفسه کاشف از که این رو چی فقط در کتا برایه 125 شده باید آنه عدد درست نیست نیست این در 125 مورد در کتابه آقاده رو مکرر باشه خود این کاشف از است که همران یک چهره شناخته ای است قف بکنی به حیثی که اصناده به این پدر کافی بوده دیگه روشن شد چیه همه دیگه نمیخواستن نگر محمد نمران نهید تا میگفتن که سر همران به ذهب میانده و اگر این قائل رو ما مرگی بکنیم و ما مراعاست بکنیم انصافا همران شناخته شده همون همران نهیم انصافا اولا از کلم خاندان زراره اشهر و بیتن علال اطلاق لشیعه فرکوفه ما غیر از اسناد خاندان هم داریم همین ابی نه ناری حلبی اصلا حلبیون خانواده ای چند نفرشون راوی حدیثند بیت کوفه بلا اشراق بیت حلبی خود این ام صادق بن عمار تقلیدی خود اینها یک اسره در کوفه خاندانی اند شاید مجموع این خاندان که ما راوی داریم از اینا راوی نه انتا لو خودشون شاید اون نفر از این خاندان ما راوی داریم همسه بعضی اسمشون غلط آمده باز اون اسمها تثیرشون همه باز اون بشه. خود میتن تما خاندان میتنی ها در کوفه شاید اونایی که ما الان اسماشون بمارسیم از که بیست سال اسمشون بمارسیم خاندان میتن تما لکه معذاله هیچ خانوادی غیر از اهل بیت علیه و سلام در میان شیعه کوفه و اندازه خاندان زراره رو نبوده همه و خود همران بزرگتر از ضراره است تقرد کردید؟ خود همران بزرگتر از ضراره است و من حواری اعداد سجاب لذا اگر ما باشیم و اون ارتکاز اون محمد ابن همران نهزی الان وجودش در خواهی قهطان یک انسان متعارفیه قهطان اینجا را اگر مولا بلی نهزم ازازه بشنشه اما محمد ابن همران اگر بخواهیم وقت چی؟ مثل زبن ابن عبی اومه چی؟ مثل یونسه تردر احمان مثل علی ابن اصلاح. مثل فطمان ابن یهیان یعنی کسانی هم که از این نقل کردن همه چهره های ممتاز در چیه یکی ممتاز داره؟ داره بالاتر نداریم، از یونس و ابن عبی و اینها در زمان خودشون بالاتر نداریم این دو بعد در اون حدیثی که عرض کردم در اول امامی هست من منصف باز هم خودم نشم مراجعه کردم از سندش اولش گیریدار جعفر محمد مشهور از مشایخ و توصیه ها بعد ایشا صحیح خیلی گم مضمونی چیزی داره حضرت صادق علیه السلام چهار تا آیه برای مشکلات فرد مثلا خوف داره ناامیدی داره چهار تا آیه ذکر کردن که انسان این آیات رو بخونه بر اونها خیلی گم لطیف مزدور فوق العاده شنید رو غلاده انصافه ابن عبی عمر اینجور سمیعت و من مشایخ نام من هم هشام و محمد ناموران <خخخ> یک کسی که عنوان شیخ و شیعه با سیلا بکنه و به نسبت پدر شیعه کفایت بکنه اگر ما خود من روی افتقاضات اولیه خودم بدون اینجالا کلمات رجال ندن اصلا خود ما از این کتبت روایات ذهنمون منصرف به ابن عیم ذهنمون منصرف بوره یعنی یک چهره شنافت شدهی که فرزند همران باشه و به نام او احتفال بشه خوب دقت بکنید در تمام روایاتی که ما داریم حتی در جهر کتوبر برگم اگه اینه که نصر خطو باشه که برامج کامپیسه یه ابن داره. در تمام اینها با عنوان محمد ابن همران مطلق آمده بعدش نداره نهدی که اصلا در چیز رو مشکوکه. یعنی واضح نیست دقیق فرمون دید از فلا که اوازه ابن نریومه از فلا زالک در کتاب رسال ابو غالب ابو غالب که از خاندان زراره است. ایشان یکی از مثلا بزرگواری های مثل زراره و این خاندان اونه که ادعه از اینها حتی بکشه هاشون هم از امام صالح حدیث نهر کردن چون خیلی اولا قیل از مقام امامه خیلی مهم بود که کسی به اون درجه برسته که بیایم بگن ایشون روان جعفر محمد بردار کوفه قبول بکنه حالا شما یونوس مبدالرحمن جلالات عجیم در طارقه داره داره که روا ابا عبدالله که لم یرهن برای یونوس نمیشن روان عبدالله عبد بکرد بعد ایشون میگه که در این خاندان اینقدر جلالت و مقام بالا بود که حتی ادهی از ترزندان اینها اینا از هزار ساله راویش روایت کردن نه حکایت روایت کردن بخی اسم میبره حمزته نحوم و محمد ابن و عبید ابن زراره. این ستار اسم میبره یعنی میشه اینا هر سه شاخت های خاندان زراری هستن بگرم میکنیم پس اولا محمد بن عمرانه نا وجود خارجی داره قطعاً چون که کیکردم خاندانش اینجوریه و بعد اعتراف میکنه که اینها از مزایاشون اینه که با اینکه بچه زوارن بچه عمرانه نسل دوم هم بلسیواروزیا این نسل دومی ها هم موفق شده از آسا ده روایت این شواهد طالع هم قرار این وقتی این شواهد نگاه می‌کنه به نظر من خیلی واضح ابتداً برای او که در مقام این مقام اول، تحلیل مقام اول بدیم تا این مقام دوم خیلی واضحه که محمد بن عمران که اینجوری مطلح آوردنقیقاً مثلا این باید یک چهره فقه باشه و با این اوصافی که من عرض کردم با مشایخش با شاگردانش واقعا میخوره که همون محمد ابن همرانه نعید یا شیبانی یا زراری باشه. این مقام اول که به اصطلاح محور به هایت نجاشه نه هستم نهتی نکرده نه ساعت کتاب رو اونی فرم می کنه اما نگفته که این ساعت کتاب ابن عید نیست یا ابن عید نداری می بگه ساعت کتاب نهریه اون تابع اینه خیلی اجازهی ای که ایشان رجوع توی نهبی بوده این نقصه خیلی واضحه تو اجازه ابن وقته بوده محمد ابن وقته نهبی این مقدار شایه بگیر مستندفین و معلومین زمان سالو کسته مرموم زراره مثلا این مقدار سوش نداره خب الان نسا خودش خیلی زیاده. یاده الان نسا به خودش سد ویستان شما در کتب عربه دارم خیلی از یاده از امام ساده خیل روشن شده آسان این محور اول محور دوم کتب رجال ما شاید اعتقادش این بوده نجاشی احتمالا چون ایشون در اجازه که داشته از ابن عده نهدی بوده اعتقادش این که در روایات هم که مطلق آمده مراد همون نهدیه ابن هرین نیست و تصویح نهده بلا با؟ ابن کیا ابن بوته. ابن ابن داشت داشته اشون از داشته از ابن, ابن جندی در حد در اجازه ابن عقده ببین وقت مشکل کار ابن عقده زهدیه ابن فضال طفحیه ابن اسواتم طفحیه هم این حابس بزرگوارش هر هرشون غیر امامیه اما اونی که با الان آن عمل محمد ابن نبی امیره که از, از خواب اجلای ما صرفانه که از اجلای ما یونسیم ابن رحمانه که از اجازه خود ابن بطه هم توش احمد محمد ابن محمد نیسا ابن نبی و ما الان برای ما واقعا تعجب داره که اگر این چرد حالا به هر عنوانی در کتب مشهور شیعه بوده غیر سهر ابن بطه چرا نجاشی از کتب زیدیه آورده اونم من کردم ابن عوده در زیریها جزو محققه نیست جزو اخباری هاست یعنی همون که دیگه تحقیق میکنه این تحقیقی که من الان به شما ازش این همین تعریفی ن بوده کان اخباری هست یعنی همونی که پیدا کرده نقل کرده تا اینجا ديال وقت داشتیم تو تمامه ما محور اول به نظر ما خیلی واضحه که به نظر خود ما که در محور اول محمد بن عمران همون زراری معروف میبونه محمر دوم که کتب رجال ما در کتب رجال در برگی دو تا عنوان داریم محمد نهامران مولا شیبان و محمد نهامران مولا بننه این نشون میده که مرحوم برگی دو تا دو در روایات چون رجال از روایات گرفته شده در روایات ایشان دیده این رو مولا این احتمال اتحالش مشکل نیست چون از کردم ما اساسا عرب نبودن زراره اساساً عرب نبودن ولاهن با بنی شیبان بوده این آقا ولایتش عرب شده با بنی نهره این مشکل این مشکل خاصی نداره این مشکل خاصی نداره یعنی قابل جمعه مرحوم دردی اونی که در مصر وازیده کرده برای ما خوب دقت نقل مردم برقی هیچ مشکل نداره. نجست تو تا محمد که نه جون داده می‌گه مولا این که زواریه. یکی هم مولا ولی نه. اما ایشون نگفتی اینا دو تا، دو تا اسمو این اون نیست، اون این هست. نه ابتهاج رو گفته نه تقایا رو گفته. پس از عبارت مثل مرحوم برقی ما تهافت در نمیاریم احتمال ردّت هم هست. مثلا مولای بنی بوده خود بود خود خاندان و بعد ایشون خودشان شرکت به بنی اتصال استفاضه کردن خصوصا اگر قبول کنیم ایشون بعدها رفتن به جرجریا یا از کوفه خارج شده حال وجود رو میدونم تشیکو دارم نمی‌دونم عبارات چیز خوندید عباراتی که دوست تماس یعنی باطل معنی میدونه نه اینطور نیست باطل معنی بشه اگر ما فرض این بگذاریم که مرحوم محمد بن خاندار مشهور کوفه ایشون رفتن جرگرایه که حالا من جرگرایه نمیم زمان ایشان بودن با رفتن ایشان به اونجا ایشان خودش رو به اشیره بنی نهر متصل کرده رلا رو با اون قرار داده از رلا بنی شیبان در آمده و علیه ابن اثبات اینطور که میگه احتمالا در جرگرایه خدمت ایشان رسیده و حدیث از ایشان نهار کرده این در اونجا برای اینکه حالا خواندان زاررا برها بودن بشیه چون ججریان ین جز نهروان ها نهروان ها صیه بودن نبودن چون برها معجابلزارشون یه ه بخشره خود کوفه ها شییه درش غلبه داشته اما بثه اغلبشون اکثرشون سنده بودن کم توشیه بودن. حالا این جرجرایی ها چون همون ججر ها بین کوفه و بخشتر نزدیک واسطه واسط و حجاج بین کوفه و برستر مسافت بین گرفتن. هم در این هم نزدی که واسط به این واسط و دجلت. حالا این سمنی بوده. اگر ما فرض رو به این بگذاریم. که این شخص وقتی در اونجا و خودش رو از من نهب قرار داده. نمیخوام ما خواهی بگیم اشتباه کردن تو اجازه زیدی ها نهبی آمده. خوب دقت بکنیم تو اجازه زیدی ها. و شاید واقعا ایشون خودش نهدی کرده منافذ نداره مشکل نداره اینکه که بگیم اتحاط مشکل نداره ایشان خودش رو ولان از بنی نهد قرار داده، چون خودش که اصیل نبوده اول از بنی شیبان که جده ایشون عقیق این کرده خود ایشان جدا شده حالا چرا شم نمیدونیم چه که از اصخ... کسی که بیاد از امام صالح اینقدر حدیث نهر میکنه. خب ایشون احتمال بسیار خبی موسیقی جفار که از رزارم در کرده اما نداره بود از رزار نجاشی تعدیلی بلا رو ممنون دیگه بلا بل نجاشی بلا هست من گیرود انز کردم نرشن نهلی لیکن انز کردن نجاشی احتمال از ابن عقده گرفته به احتمال بسیار خبی که ظاهر عبارت میشه دیگه من شون وقت نمون شد بردی پس تا اینجا ای اینا اتحاد رو غیر به می میگرفتن اینا توجه نشده که این شهر شهرش را عوض کرده ولاهش رو عوض کرده این منشه تعدد شده شهر شهر واحدیه شهرتش و آنوانش همین اختضار را داره رسال الله و عالمه اگه انشاءاله بر روز بردین از جه هایی که این حدیث قبول بکنه و بخش نهایی